چراغ روی تو را شم گشت پروانه مراز حال تو با حال خیش نه. خرد که خید مجانین عشق می به بوی سنبول زلف تو گشت دیوانه به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد هزار جان گرامی خدای جانانه من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش نگار خیش شدیدم به دست بیگانه چه نقش ها که برنگیخ نیم و سود نداشت فسون ما بر او گشته از تفسانه بر آتش روخ زیبای او به جای سپند به غیر خال سیاهش که دید بهدانه به مجد جان به سبا شم در نفسی ز شم ای روی تو اشتون رسید پروانه مرا به دور لب دوست هست پیمانی که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه حدیث مدرسه و خان غحمه گویه که باز فتاد در سر حافظ هوای می خانه